چند تا حدیث داریم در دل این باق یکیش این است که قلب المؤمنه بین اسبعین من اساب الرحمن دل مؤمن بین دو انگشت از انگوشتهای حقه از انگوشتهای رحمان. و راجع به اینجا مفصل بند ارز کردم و گفتم که اون چه میگوین که در سوویدای دل آدمی هست از یک جای دیگه نیست آلم کبیر اصلا آدمیست و این عالم بیرون آلم صغیره برای اینکه اون چه از اسرار خلقت و وجود آدمی هست در هیچ کدوم اینش دانیست ضمنن به شما عرض بکنم که تا اونجایی که بشر تا الان دانشش اجازه داده تا امروز اونچه چه اطلاعات هست این است که ما هیچ ساختی هیچ صنعتی، هیچ ساخته ای رو دقیقتر و پیچیده‌تر و عجیب و غریب‌تر از مغز بشر در تمام جهان آفرینش تشویش نداده علم هندیه بنابراین تا اونجایی که دانش ما اجازه میده من نمیدونم شاید یه روزی این برسه و ببینیم که این موضوعی اصلا هزار بار از اون 27 چه نمیشه گفت که قیب که نمیدونه ولی تا اونجایی که ما اطلاع داریم همین طوره دلم آرز کردم که در حقیقت دل که مرکز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 بردب به این ربایت که اهل تصفه کنه دارن تنها جایس که میتونه خدا در اونجای سایه انایتی بینده است گزدل من که از اول تا به عبد آشق رفت کم کم قراصونی شده آشق میره همینه آشق رفت عاشق یعنی آشق شد جوافتان کس نشنیدیم که در کار ما از صدای صدا با فتحه از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گمبت دفعه بمان برای معنی کردن این اول و از گمبت رو این افلاک رو تشبیه کرده به گمبتی که گردند است این مال حافظم نیست قبل از حافظ بسیار شعرها همینه کردن و از جمله مثلا نظامی میگه که گمبت گردنده روی قیاس هست به نیکی یوبدی هرچناس دو مثلا لستار نظامی پیش از ما حتما گفتن حال تشبیه افلاس به گمبت خیلی قدیم است. ولی ما کجاییم؟ ما زیر گمبتیم یعنی ما روی زمینیم و این گمبت افلاس مافوق ما, فوق ما. اگر یه وقت رفته باشین، در گنبدی، زیر گنبدی ایستاده باشین و صدا کرده باشین، اگر این گنبد بیش از 17 متر ارتفاع داشته باشه مثلا 18، 20 متر باش باشه، صدا فرق می‌کنه. علت اینکه کمتر از این نمیشه این است که صوت در ثانیه 340 متر رود. بنده الان که حط میزنم این هوا موج بر میداره مثل سنگی که تو آب بندازیم که موج بر میداره این موج میره همجون میره وقتی خورد به اون مانه تا بر میگرد و باز دوباره میره همجون مخلوط میشه با هم بعد اگر نباشه سی سل چهل متر ثانیه میره حالا گفتن که اثر محسوسات یک دهم ثانیه در حس در چشم گوش و همثال اینا میمونه یعنی وقتی دیدیم قالبان که آتیش وقتی میگردونن به نظر یه حلقه قرمز میاد چرا؟ برای اینکه این هر دوری که این آتش گردون میزنه زودتر از یک ده ثانیه است بنابراین این تصویر همجور به صورت حلقه میمونه در چشم آدم گوش همینطور تا یک ده همه ثانی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 18 میره، می ره. 18 متر هم بر می چه 36 متر تا 34 مترش اثر صدا تو گوش هست وقتی گذشت اون صدا به صورت صدای دوپم می آه. این اصل قضی هست که اگر در پاصله بیش از 17 متر باشه برگشت موج صدا بیشتر از یک دهم سانیه طول میکشه و در به صورت صدای دیگری صدای دوپمی به گوش آدم می رسه. بین این اینه اون کاری که در همه گنبدها اونا میکنن، و من یکی از عجایبی که دیدم اینو براتون بگم یه مسجدی ساختن در کراچی و مسجدیست که سخت نسبتاً کتایی داره ولی سختش گمبدای شکل با انحنای خیلی کم انهنای خیلی کم سخت ها نسبتاً کوتا. پای دیوارش که با این یک کمی از قدل آدم کمی بالاتر اون بسات هم که انهناس مثلا سته براباری منبر رو در جایی گذاشتن تو آخون که میره بالا منبر حرف میزنه تمام کسانی که در این مسجدن خیلی هم مسجد است، تمام صدا یک نواخ به گوشتون میرسه و احتیاج بلندو هم نداره دلیلش این است که محاسبه این, اکا، این اکاس از علمی هست آکوستیک راوت میدونن که این از شعبه‌های فیزیک آکوستیک علم مربوط به صدا این هست. ها انظر آکوستیک اینو محاسبهاتی کردن که صدا یک نواز در سر برخوردها متوالی رو در مختلف، یک نواز به همه جای این مسجد میرسه. در هر جا هست. صدا انعکاس صدا مولوی میگه که این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید ها را صدا فارسی صدا پجواک، پجباک واک یعنی صدا و از همین است کلمه به معنی لغت واجب از همین کلمه واک رو در زبانشناسی الان جز اصطلاحات به کار بردن و به کار میبرن و به صورت اصطلاح علمی اونجا استفاده میشه تعریف رو خواستم داره که مرضوی تو زمان شد پشت باک یعنی انعکاس صدا عربی صدا اون چه میمونه در زیر گمبت صدای ما نیست انعکاس اونیست بنابراین شعر رو بعد اینطور خوند از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گمباد دوار بماند توی مسجد شاه اسماحان میسیم که وضعش دوریست که وقتی زیرش دیر گمبادشون مرکز هر میزن سه چهار دفعه این انکاستداد رد وعده هر و اشاره حافظ به همین چیز است یا از صدای اینم که روشن شد گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگست اینجا باید به ارسون برسونم که نرگس انواع احسام داره متاسفانه بنده انده نرگست شناسیم اصلا خوب نیست و باید روزو کنم به کتاب های مخصول گیاه شناسی که الانجا نیست چندین نوع نرگس یکیش اسمش نرگس شهلاس یکی اسمش نرگس مسکینه و انواع احسام نرگس های دیگر اون نرگسی که به چه تشبیه می وسطش سیاه اون پیاله وسط نرگست اگه زرد باشه که شباحتی به چشم نداره. یه نوع نرگس هست که گویا بهش میگن نرگس شهلا اون نرگز شهلا وسطش سیاهه بناباره این میشه به چشم بله، حالا من دقیقا ارز کنم اطلاعات بنده مثل باقی سایر مساعدی که میگم همه نمکشی دست میباشید گشت بیمار که چون چشم تو گردد چشم محشوق رو به بیماری توصیف کردن چیز میگه که حاتف اسمانی گذ از دو بیمار پرو ماند طبی چشم بیمار کسی و دل بیمار کسی چشم بیمار محشوق و دل بیمار عاشق یه نرگز بیمار شد، برای اینکه مثل چشم تو بشه او که نشد، ولی در اون حال بیماری باقی موید به تماشاگه ظلفش دل حافظ گوزی شد، رفت که باز آیتو جاوید گرفت آبا یعنی علال عبد، باب اگر سوال چیزی هست در این باب، بفرمید؟ بفرمید، کیه؟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 میگه یه پرسیمر افتاد در چین که این همه نقشونگار در چین قدید آمد و به هر حال صورت چین و نقش چین و نقاشان چین و اینا سیدی یکی میگه که سعدی میگه که فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند که چی بابا شما این مرد که که پیرامون خرگاهش بدوزند یعنی اینو به صورت کتیبه اون پای خرافردی اون رو نقش با دو پاس سوزن نقش سوزن نقش میکنه این بیت رو تلویزیون گفت نقاشان چینگا که پیرامون خرگاهش بدوزند یعنی درست در حال نقش چین خیلی مفصل بعد مولانا یه قصه ای داره در باب خیلی قصه ای زیبا هست که البته قبل میلیون تور چین رو نمی چرا؟ اصلا میلیاتور از چین آمده بله، بله، بله، میلیاتور اصلا از چین آمده بله، بله، بله ما اصلا از قرن هستوم هشتوم پیشتریش نقش نقاشی نداریم در کتاب ها و چیزه همون نداریم و مال مکتب ایس مکتب هراهات و بعد از مخل اصلا این پشتت شد و آمده برای اینکه میدونیم که نقاشی اصلا هرام میدونن بخصوص. جاندار کشیدن حیوان و انسان به کلی حرام ارز کنم که یه قسطه ای دارد که مولانا گرفته خودش چیز کرده البته از گذشتگان به نظرم به قضالی هم هست میگه که نقاشان چین و نقاشان زروم با هم مسابقه میخواستن بذارن اونا گفتن ما بهتریم. اونا گفتن ما بهتریم. گفتن خیلی خب دو دوتا اتاق میدیم به شما دوتا و شروع کنیم نقاش های چین رفتن و رنگ آوردن و وساط آوردن و خیلی مفصل و نشستن و مشکول شدن و ادهی و ادهی کار اده و اده اده اینا رونیا هم یه فرده انداختنه اتاقشون هم مشغول شدن منطقه کارشون به هم نه هیچ مواد تو اینا نخواستن فقط شروع کردن به زدن دیوار و قلی کردن دیوارهای اتاق چنانکه که مثل آینه یه بسیار صافتی موجت بتونه تصویر منعکسی دیوارت با. بعد که روز چیز مصابقه شد تا پردر رو برداشتن نقش دیوارهای چینیان منعکس شد در اون اتاق رومیان و وقتی که شاه آمد هر دو عین هم دیگه است گفت قصه چیه مطلب چیه براخره بعد, بعد مولانا البته نتیجه ارفانی میگیره میگه تو دل تو باید پاک بکنی دل تو باید صاف بکنی به صافی آوینه بکنی تا نقش حدیثت خودش در تجلی. حال میگه که زی آخه زیبایی چون منشه زیبایی و منبع زیبایی حضرت حقه ان الله جمیلون و یهب بل جمال باز از احادیثیست که خیلی سوکیه بهش استناد کنه اینه که میگه بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا بر در دیوار بازم شد اگر این نخش چین ماد شد و بی حرکت مونده در اثر شیفتگی به جمال هم دو رو در لباس محشوب ازش حرف میزده اینجا گویه کسی بوده که رفته از و قضل اینه شربتی از لب لعلش نچشی و برم کوتاهی است که خیلی توضیح هم نداره نمونه شعرهای آشقانه هم هست که به کلی قیرهاره کانه است میگه شربتی از لب لعلش نچشی و برم روی که او سیر ندیدیم و برم گوهی از صحبت ما نیک به تنگ آمده دید بار فرد بست و به گردش نرسیدیم و برم بس که ما فاتحه و هرز یما میخاندیم بس بهش صوره اخلاص دمیدیم و برم عشق می داد که از کوی ملامت نرمم دیدی آخر که چه عشق خریدیم و برم شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن در گلستان و نچمیدیم و برم همچو حافظ همشب نال و زاری کردیم که دریغا به جداش نرسیدیم و برم. ظاهرن کسی بوده از دوستان حافظ و معشوق احتمال قوی اینست که نبوده دوست و بوده ولی خب ارز کردم لباس معشوق در تن ممدوعش میکنه کسی بوده است و مسافر بوده ظاهرا رو میرفته و مثل اینکه که بیخبر هم رفته بوده این که حافظ این غزل سروده غزل های حافظ هم بلا حاصل دنبال مسافر می و همه این مقاصد می رسیده هر جا او می قبلا غزل بوده که است که به دست و می رسید و فارس گرفتی به شعر خوشحافظ بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز هست غزل با اینکه دیوانش خودش در دور زندگیش هیچ وقت جمع نکرد و بعد از مرگش دیوانش جمع شد ولی غزل در دوره حیات خودش به همه جا تاه به یه مکان ببین و زمان در سلوط شرک این طفل یک شبه رای یک ساله می من این اینه به هر حال شربت شربت اصلا به معنی نوشیدنی نیست و حد لازم نیست که درش شیرینی باشه یا هیچ لازم نیست دواه باشه چنان که در اصطلاح طف شربت یعنی یک یک چنگم یک جیجه یک پرس به قول کلویا نوشیدنی او رو یک شربت آب یعنی اون مقدار آب که آدم در یک بار نوشیدن پسک میگه شربتی از لب لعلش نچشیدیم و اینجا احتمال این بسیار هست که مرادش اگر دوست باشه این کنایه از نشستن و صحبت داشتن و گفتن و شنیدن باشه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 در نظر شخص دادن کسی رو که دوستش داره هر شکلی که باشه به نظرش زیبا میاد بلکه اصلا در حقیقت چیز رو نبینه گف گف زنی عاشقی داشت و این عاشق میامد و هر شب و این میدید و گویا خیلی هم دست رسیدشون دستین دوتا به همینگه خیلی مشکل بود و مرد عاشق با زحمت بسیار می آمده و می و یه روزی می که یه خالی توی صورت محشوبه که این خال این خال از که؟ توی صورت تو هست محشوب می که مثل این در عشقت نوکس فیدا شده عشق تو داره سستی می گیره چطور؟ که که همیشه این خال بود صورت من بوده و تو تا اون روز اینقدر محبه دیدار من بودی که این خوال رو که داریم میبینی معلوم میشه که عشق تسکی به این از یادم ای کسی رو که دوست داره به نظرش زیبا میاد حالا هرچی میخواد باشه پس روی محبه کرمش اشکالی نداره باز گمهی از صحبت ما نیکش به تنگ آمده بود. این نیک اینجا قیده یعنی خیلی بس صحبت اصلا به معنی دوستی برای خوابت ما در زبان فارسی فارسی رایج ایران اینو تبدیل کردیم به گفتگوی در حالی که به خیلی مزهکتره که گفتگوی دو نفره رو گذاشتیم مصاحبه بسیار حالا کار نداریم که اینا عرب میگه مفاوزه خود عرب میگن میگم مفاوزه اینتلیور. یعنی حالا مصاحبه یعنی صحبت کردن متقابل ولی ما یه مصاحبه داریم یه مصاحبت داریم اینا هر دوش یکیه یکی در حال وقته یکی در حال وصله مصاحبت یعنی دوستی و رفاقت می‌کنیم داریم در فارسی مصاحبه رو یعنی گفته بود دارخوابیم میگیم در مصاحبت رو آقای روح رفتیم به فلان جا یعنی در خدمت ایشون میریم که تو میره مصاحبت و مصاحبه هر دو یکیه به هر حال sohbat به معنی دوستی و رفاقت فقط با مصاحبت هم به همون معنیست، مصاحبه هم به همون معنیست، حالا خب به کار می‌داره می‌داره چوبشون هم تو نمی‌شه و در افغانستان، این به صورت دیگری مصاحبت، صحبت داشته صحبت معنی هماهوشی و کامزویی جنسی است یه وقت ایلی بره اینکه دیروز فانوز یا کردم باش صحبت کرد تا میشو طرفنی بعد اینا سو تفا ما است که محن پیدا بشه ولی صحبت اصلا به معنی دوستی رفاقت هم که اینجا می بینیم جونوی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود. البته حافظ میدونه که هیچ اینطور نبده و اون طرف هم اگر اگر غ از این بود اینو نمی دو با قید تردید، وی یعنی نصب این است که گووی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود بار بر بست و به گردش نرسیدیم و پره. از بیت آخرم که بهش میرسیم میبینیم که این شخص مثل که بیخبر رفته بوده که حتی به خداحافظی هم نرسیده بودم عجله داشته یا حالا، چیه واقعاً خیلی غزلای حافظ هست من جیر نقطه اساسی بهش تشاره بکنم اون است که حافظ مثل هر شاعر درجه یک میشه هر شاعر واقعی غزلش فزاش نزول داره. یعنی این نمی نشستم شب انجمنی چارتو با هم میشه را میگن که این ولا بریم بسازیم همه اون من چه بکنه؟ بعد می اون زور روز که یه چیزهای باقی سر همکار بردارم بیارم. حافظ اولبار متثر می شده از یه چیزی و بعد این می سایم بسیاری از این ش زوله هست. بعضیش هم نیست بسیار کسان که اشاره میکنه ما اصلا نمیدونیم چیه ما اصلا این شخص رو اصلا نمیدونیم چیه گاهی اسم شخصم برده شخص شناخته نیست معروم خانداری نوشته شد لشکر قم بی عدد از بست نیکاهم مدد تا فخت دین عبد و سمد باشد که قم خاری کند این فخت دین عبد و سمد رو ما نمیشوشیم در مراجع اون روزی نیست 700 روزه رو نیاد. ما ایت راه نداریم بدونیم کهیه و این آدم همون اینکه اینجا که اصلاً نیست بس که ما فاطحه و حرز یما می‌خوانیم سوره اول قرآن رو بهش می‌گنم سوره فاطح طول کتاب یعنی افتتاه کلام خدا با اون میشه. در ضمن اینجا باید عرض کنم که پیغمبر اکرام خودشون مقرر فرمودن. که ها بشه ترتیب در قرآن بیاد و کدوم از په کدوم بیاد حتی گاهی دو تا تا آیه که نازمی شد می که این آیه ها رو کجا بگذارید به این کدوم قسمت و کدوم بسمت بنابراین سوره هم رو هم که اولی کتاب گذاشتن به دستور رسول اکرمه و فاتح کتاب این, این سوره خیلی خیلی در قضیبتش گفتگور شده عرض کنم که یه اسم دیگرش سبع المثانی است سبع میگن برای اینکه هفته آیه داره مثانی هم میگن برای اینکه از سانی و ایناست معنی اینکه دوبار نازم شده گفتن سوره فاتحه و کتاب تنها بخشی از قرآن هست یک بار در مکه و یک بار در مدینه دوبار نازم شده و تفصیل این و معنای که در این هست و در کتاب های تفصیل که معادل تفصیل کل قرآن به هر حال فاتحه رو در موارد بسیار توصیه کردند که خانده بشه از جمله در نمازهای روزانه که حتما در هر نمازی دو بار باید صوره فاتحه رو کتاب کنده بشه و پنج نماز داریم روزی ده بار باید پاتر تو کتا میکنم و همین دلیل است که عوید زارفانی از یه مولانا از از علما حرف میزنه از علما دین یکی فلان عالم مولانا نمیم عبالمظفر فلان گفتگو میکند راجب اینکه علم رو باید در کودکی آمو و علمی که در کودکی بیاموزن همچنان نقش زنج و هرگز بیرون نمیره و هل علمو که کن به فلحجر از این بگفت مثلا من سوره فاتحه تول کتاب رو در بچگی یاد گرفتم و اکنون پنجاه سال است که نخوندم و هنوز یادم نرم <تصفيق> <تصفيق> بس که ما فاتحه و هرزیم هرز به معنی اصلا نگهداری است و یک مقداری دعاهای محسوس هست که معتقد بودن که اگر کسی این دعاها رو با خودش داشته باشه صدمه بهش نمیرسه مثلا از آسیب نمیرم دوز دو راهزن و از قذب سلطان اینها در امانه یکیش رو از امام جواد امام محمد تغیی نهاره می و معروف از به حرز جواد یکی دیگرش هم همین دعایی است که معروف از به حرز یمانی و میدونید که هرز جواد احتمالاً البته بنده متاسفم که نه علم ملایی دارم نه نون ملایی خوردم در تمام عمرم اینی که عقلا میکسا خیلی نمیرسه ولی گویا یا جواد دعایی که از حضرت جواد منغوله و روایت توده مالش شیه باشه. البته من این هم زیر حد میسنم ممکنم هست که احل سنت هم قبول داشت و هرز یمانی بدون شک تو که بین احل سنت مهمول پس که ما فاتحه و پرز یمانی خواندیم و پیش سوره اخلاص و بر بره سوره اخلاص هم اسم قلحوه اللاوهدی اون سوره معروف است به سوره اخلاص پس این فاتحه کتاب یکی سوره اخلاص و از پیش سوره اخلاص دمیدیم اون بره اشوه میداد اشوه به معنی فریبه سخند بنابراین هیچ ربطی به اینکه خانم یه داشته باشه البته خانم ها عشبه دارن بلی آهایون ها می داشته باشن هرکس که فریف پیدگسی رو با سرش شیره به و به یه نهزی او رو قافل بکنه از حضیقت می بشنم عشبه حافظ میگه بانگ گاوی چه صدا باز بهت عشبه مخر اشاره به داستان سامریز که حالا من فرصت دستم چه ندارم ولی میگی این سریب و نخیم از گاف بانگه گافی که صدا بازده هست اشتبه مخر سامری کیست که دست از ید ریزا بذاره اشتبه معنی فریبه اینجا هم میگه این دوست من اشتبه میداد دقیقه هم دادنم چنان که فریب هم با دادن بکار فریب دادن اشتبه میداد که از کوی ملامت نروم کوی ملامت کجاست کوی حافظه آدمی که رند است و اهل ملامت است و برای اینکه عده یا حتی ادهی از بزرگان تصفق گفتن که حافظ جزب ملامتیه بوده البته یه فرقه ای هستن از صوفیه که اینا برای اینکه احوال و مقاماتشون از نظر خیف روشیده به مانه تظاهر به کارهایی میکردن که اعتقاد مردم از اینا سلب بشون و مرید پیدا نه که خود این مریک گرفتن و دست نوسیدن و دنبال اشخاص راه افتادن این پ هم در بود. و معلامدی کسانی بودن که حالا یا عملا هم این کار میکردن یا نه و هر حال تظاهر به کارهایی میکردن که مردم حسن اعتقادی در هرشون پیدا نکنند. در مورد یوسف ابن حسین رازی میگوید که رفت میدهش که پیره نشسته و پسر زیبایی یا روبروش از یک سررای، بنه تونج شهراوام جلوش بعد اون پراله داستان خیلی درازه که من دون داستان کار ندارم بعد از این که که این پیرو خیلی صاحب مقام است و پیرو خیلی است و در احوالش یه عجب چیزی درست, در عجب درست. که وا چرا این کار می‌کنه ها تو محله و محله دورش یعنی زنان بغا افغانستانم سکونت بده میگه چجوریه میگه بالا این خونه خونه پدری منه و وقتی خریدن هیچ این خونه‌های اطراف نبوده بعد اینا آمدن سکونت که آن منم وقت خونه عوض کرد این را نداشتن نیزه هست میگه این بساید چیه؟ میگه که این پسر منی که توی رو من نیست و برآن بشترم درست این سراهیر هم یک کسی شرابشو خورده و پرد کرده بود بیرومون من چون زرفی نداشتم برداشتم و تطهیر کردم و توش آب بعد اون مرد، اون مردی که اومده بود پیش یوسف ابن حسین خودش مرد پریز ها متحویه خیلی خوب بود اتفاقا یه بابایی زنشو رو بعد نخصص بر به سفر حج زنش می پر دست این آقا پس اون مرد. میگه من میرم میخوام برم به ح و به هیچیت اعتماد ندارم و این زنم به دست تو میکنم برای اینکه دیگرون م ممکنی که بل سر من بیاره. اینم می پذیرره بعد اتفاق میافته که بعد از چند چش نیست به این زن و میشه طور که. پاب و آرام از سر چون مرد فرهیزگاری بوده و واقعا نمیخواسته این فردبختی سرش بیاد میره پیش پیر خودش و میگه که من یه چنین گرفتاری پیدا کردم و شروع کنم این, این تکش این زن از مغز من بیرون نمیره و من نمیخوام کاری بکنم که خلاف شرافت و خلافت دین و تنبا بسه میگه تو باید برید به از خراسان بری به رین یوسف ابن حسین رازی رو سراخ بگیریم برید پیش او دوایو تو پیش رو بسید این مرز یه بارد میاد به ری از یکی این فرص خونه یوسف ابن حسین کجاست میکرد این مرزی که عرق رو در سختار داری از دو گمین، سه گمین فرص میدن بر میگرده بر میگرده پیش پیرش میگه آه من رفتم اونجا و آرشی گفتن این آدم اصلا با عواضه خیلی هورحوری مزخرفی و میگه رفتم توی میگه گفتم دعوای تو پیش اونه کلا همینش میری فارس دیگه بعد میگرده و میفرسه که مردم فرس میدن میگه ولی من یه بدهی دارم باید بشم بدم و اینا رو خلاص نشون یه خونه رو میگه یاد این منظره رو میذارم میگه خب تو با این پرهیش کاری و با این مقام و با این حال و با این وضع آخه چرا بساتو رو درست کردی که سروع زمن مردم به خود رو جرب کنی بگه من این بساتو برای این درست کردم کسی درنشو نهاره رو امانت به من بسید با نگه به محض این که این حرف رو زد یوسف ابن تمام اون احوال شیفتگی و فیفتگی از من سرد شد و پرس شد هر جه داستان در پرسیت اولیا هست با جوزیات رو اگه لازم بشه شو میتونم جوزی ارز کنم که <تصفيق> این اشتباه هر حال این از اشته میداد که از خوی ملامت قربیم اینا جماعت ملامتی بودن و غروهی از جمله مرحوم دامداد بود که دعوی تصف بفتاش من نمیدونم که ادعا داشت یارا من خدمت چون چون نرسیدم نمیدونم ولی خب خودشو قط میدونست و صاحب مقامات و احوال میدونست و انشاءالله که بوده بعد یه رساله نوشته به نام حافظ شناسی یا الهامات خاجر و اونجا این مسئله رو انبان کرده که حافظ جزء این ملامتی دید البته شعرهای بسیار هم میشه کرد که تایید کنه این نکتره اما شعرهای دیگه هم میشه پیدا کرد که تعیید نکنه یا در مخالفت شده شده اشوه که از کوم ملامت نروم دیدی آخر که چونان اشوه خریدیم و برم میگه وقتی که اشبه خریدنم به معنی قبول کردم او اشبه میده و طرف اشبه میخره اونجا توی چیزم توی اون بهتن که کندم قبلا میگه با این دیگاه دید چه صدا بازد اشبه مخر خریدن میگه او اشبه میداد که نمیره ما وقتی اشبرا رو خریدیم و قبول کردیم گذاشته اشبه میداد که از کوی ملاحات نردم دیدی یافر که چونان اشبه خریدیم و برم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 جمعیان در طلب از یا آفش عشق خلقیان در حوث از دریا بخمن گاه گایی بگذار بر صفحه در تا صناییت بگویند و دعایی بدمد هر سر زلطه پریشام تو مجموع دلیست تا نگویی که از چمن کمند تو کمند بعد میگه در چمن صفحه... درب ستا دست و ستن و بر, بر پای که اگر قامت زیبا به نماوی نکمه کمیدن به این من چمان در چمن حسن و لطافت لیکن در گلستان بسالش سالش نکمیدیم و برم همچنه حافظ همشت مال و زاوی کردیم که این به ودا اشنر سیزیمون برن ودا میشه بدرود بدرود کردن به معنی خداحافظی و بدرود معنی حالا ما میگویم خداحافظ برای همه ولی خداحافظیه به معنی که برای سخری کنولانی برن یا طوری باشه که اتمالا یا بعده ملاقات غیر ممکن باشه یا اینکه اولا اقل دیر مدت باشه او رو میگن پدرول. سعدی در گلسونش میگه که من رفتم در جامعه کاشقر اون پسر محبی بود میگونم هرکی از من پرسید و اینا همون گفتم که شعر عربی بسش خوندم که غالب اه... به غالب اشعاروی در این به فارسی باشد و بعد میگه من شعر فارسی گفتم که طبع تراث ها حوث نه شد صورت عقل از دل ما محب شد ای دل اصراف تو سید ما به تو مشکول تو با امروزه میگه کسی گفته بودش که پلانس عزیز تو اومد و لط کرد آن محبت کرد چه کرد و یکی دو روز اونجا بودیم مهربانی بسیار کرد و من میخواستم برم بعد در گردن من آویخت و روی همگر رو بوسیدیم بعد میگه که موسداوند روی یار چه سود هم در آن لحظه کردنش بدرو برای که سعدی دیگه اعتمار اینکه به کاش نار بیاد و اون بچه روی دیگه وجود نداشتیم. پوسه دادن به روی یار چه سود هم در آن لحظه کردنش بدرود سیب گویی ودای یاران کرد درست به جای بدرد سیب گویی ودای یاران کرد که از این سود سرخ و زنسود زد که این بری با وداش نرسیدیم و برم بله این فضل میکنم که چیز نیست؟ من ندیدم توی چیز دو تا این تو حافظه اینجا بیه فرمان ختم گفت مکش تا نروم ما سرخی سرختش نکشیدیم و برم یکی گفت از خود ببرد هر که به سآلن طلبت ما به امیده وی از خیش بریم دیمو پرد من فکر نمیکنم یعنی که اون راست من که امروز دیدم این دوباری دوست احتمالا شاید تو چا به خودسی اینا باشد بله بله برحال منده نیدم بعد بدیست البته یه مقدار زیادی علاقه آدم به شعر که با شعر داره و عادت است که با شعر کرده واحی رو می‌بینه اول چون برسه بخوا عادتش. نیست فکر دانه که این که اینجوره به درست نمیخوره بعد که فکر میکنم اینه که این مراسق بهتر از اون اولیست فاکر خود صورت اول در ذهن این اینست که دوبهیت هم حال هست این ها نیست اینجایی چیزی دیره شما و گزه این حالا اینا تمام جوزی توی... ها چه اونجا توی هست من نگاه کنم نگام تو نسکه آی این دو هم هست یا یعنی. یه تقریبا من یه پناه به خدا در بر دو شیطان یعنی پناه میبرم به خدا و تعویز بمعنی پناه بردن ولی حتی برای یک خاصیت باشه. مجده. با... مجده. من نمیدونم خودم باید نگاه کنم, نگاه کنم. نگاه کنم مار یا بیمار که این رو و هر یا ایمورسیت رو منطنه اینه ولی کلمه مار از مردن میاد دقیقانو مار رو تونهیش که مرده شنندیده و چیز ندیده اونیا نشان جاقیدان بودن و در خوی بسیاری از جاق از چون به اندوان مقدسه این دقیق که در حقیقت جشبه بهش میدادم چون برگ ما مار رو نگیزم ها فر فرد کنم که با نمی‌دونم چه های چه های چه های چه های مار از مردنه بدونشن حالا شما لطف بکنید این غزل رو بخونین. در ازل در ازل پرتو حسنت به تجلی زد. پیدا شد و آتش به همه آدم زد. جلوهی کرد دی ملک عشق ندار. ملک. دی ملک عشق ندار. این آتش شدو. شد از این قیلتو و آدم زد. شما اینکتون نیست. سوادتون جا مونده. بدم اینکتون. هر <تص> گرفتری را. خب با اینکش بیتره به لفت احب میخواست که از اون شوله چراق افراد برق غیرت به و جهان برهم زد مدعی خواست که آید به تماشاگه را دست قیم آمد و بر سینه نا زد دیگران قرعه قسمت همه بر عش دادند دل غمگیده ما بود که هم بر غم زد جان الوی حوث البلدی. حوث البلدی. جان الوی جان چاق زنختان تو داد دست در حلقه اون دلف خمندرخم زد حاف این به بهتر اینجوری بخونم. حافظ آن روز طرلب عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خوررم که یعنی وقتی اشک تو رو تحهد کرد از سر همه چیز گذشت از سر خوردنی اینا گذشت مرادی. برحال این وزلو که دوستان شنیدن اگر دقت فرموده باشن شرای حافظ خیلی رعبون و ساده است. به همین دلیل مردم میخونن خوش آهنگ هم هست موسیقی خوب داره میخونن و خیال میکنن که یه لذاتی هم میبرن خیال میکنن که فهمیده. بعد که بپرسی ازشون که خب این چی میگو در ازال پرتو، و حسن از تجلید هم زد کی؟ تجلید چی چیه؟ بعد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد عشق کی؟ به کی؟ جلوه ای کر رو خد رو خد کی؟ ملک عشق نداشت این آتش شد از این غیرت و بر آدم ساز الاخر دوباره نمیخوام بخونه غزل کاملا به صورت معما یعنی یه ذره دقت بکنین و نگاه بکنید میبینید که هیچ کدوم از این پیداش محسن نیست به حافظ کم از این غزل ها ندارید یکی دیگرشون دوش دیدم که ملائک داره میخوانید یکی دیگرش اکس روی تو تو در آینه جام افتاد سوپی از پرطورنه تر طمع خام افتاد یکی دیگرش سالها دلطلب جامعه جمعه تو میکرد بازم ها سال من باید ورق بزنم حسنه به اتفاق ملاهت جهان گرفت آری به اتفاق جهان میتوان گرفت اینا غزاله یه بار فرهنگی و یه سابقه یه علمی و ادبی و اعتقادی، مفصلل پشت سرش دارهتون در اینجا به اشاره خیلی خیلی مختصر اتفاع کرده و نابرا این مفهوم من اینجا دا مرسادله العباد آوردم و بعد, بعد از اینکه یه مقداری توضیح دادم خواهش خواهم کرد از مثلا آقای نوح که بحث این به تجلی بخوان در حال تجلی، اصطلاح ارفانی خیلی دقیق خاصی است که مفهوم خاص داره هر روزگاری که حافظ سعدین ها به کار می بردن همون مفهوم رو داشته که می به جبریل گفتش که چنین گفت سالاور بیت الحرام که ای پاو و برتر خورم گفت نه و نمیتونم که گرد یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پر فروغ تجلی یعنی اینا رو قدیم میدونستن ولی ها از دوره صفویه به بعد این لغتها رو پفار بردن بدون اینکه که معنیشه بفهمن بدون این که اصلا بفهم قضیه چیه معروم شهریار باز حالای مختصر ربطی داره البته میگه عبدیت که به هر جلوه تجلا میکرد دلربایی همه در آینه ما کرد عبدیت که به هر جلوه تجلا میکرد این تفسیر شهریار نیست تفسیر این است که این مطالب یک جوری دیگه رایج شده بوده که هم همش دارن میدونن هیچ اشکالی نداشتن حالا بنده قرار حال تجلی رو خواهم کاهش دادم تخونید ما اینجا هم ضبط ولی این کتاب باز ممکنه در راستا تو بازداشت نباشه یا فرصت نکنه باز تو نوار باشه بهتره در حال اول همه کلمه ازل رو بنده عرض می‌کنم. یه ازل داریم یعنی بی آغاز. یه ابد داریم یعنی بی انجام. و یه سرمد داریم یعنی بی آغاز و بی انجام. در دار فلسفه ثابت شده که چیز بی آغاز نمی‌تونه انجام بشه. یعنی بی آغاز تنها و بی انجام تنها فقط لفت نمیشه که اون سر یه چیزی بی انتهاه باشه این سر یه بیاد اینجا خواهد میشه این امکان نمیشه. برای دلیلش هم میگن فرض کنیم که دوتا زنجیر از اینجا از پلوی کشیده شده شده شده تا بی نهایت خوبه؟ یه وقعی میاد و عرض کنم که ازل آزال و عبد و آواد و تعبید و معبد و مختلف از عربی هم هست ازش ظاهرا وباتون اعراب در اون روزگار در روزگار نزول قرآن که هیچ مدت ها بعد هم این قبیل مفاهیم رو که خیلی مفاهیم انتزایی مفاهیم ایست که ذهن باید خیلی ورزیدگی داشته تا دا بتونی درس بکنه اصلا نداشت. فا اما در فارسی در فارسی که نه در فهلوی و عوستایی اونجاهای پیشاوند داشتیم الف مفتوح که الف نفیه بوده ام مثلا مرحوم قریب نگوشته که من نمیدونم این. تا چهت سه هر نوشته ایران و ان ایران اه یعنی دوز ایران و معمول از الان که ما هم مرداد رو میگن امرداد کنان که این درست است که در عوستایی، امرتات یعنی نمردنی و جاویدان ولی تا دوره سلطنت رزاشا و هیچ وقت این کلمه امرداد در شعر، نصر، هیچ جا به کار نمید عرباب که خسرو زردشتی کنم که کار فرداز مئلس بود مئلس هم هر سال یه تقویم چاپ میکرد تقویمی چاپ کردم اونجا ماه هم مرداد رو نوشتن امورداد دلیش همی بود که گفتن مرداد یعنی مردنی امورداد یعنی نماردنی پس امورداد درست بله در اوستایی این درسته اما این الف نفع اصلا به فارسی نشدیم. سعدی داره یکی قله مرداد محدوده کرد تیمار دی خاطر آسود بکنه پیغمبر زبان امروز ماست؟ تازفه مهر ماه آید آبان تازفه پس تیر ماه باشد مرداد هر جا آمده این کلمه از, از روز اول شعر فارسی تا آخر مرداد بعد هم کلمه در زبان رو حالا چره شده اینجور؟ برای این کلمه سابیده میشه کم کم برای که رو زبان خوب بغلطه شاید یه روزی هم بوده ولی مرداد ساده تر بوده کفتن مرداد و هیچ دیگه اینجا صورت اسم خاص در اومده معنی شد کسی معنی مردن اینا نمیده اصلا این است که روح سادگی میره کلمه در در در, گردش در زبان ها دیگه نمیشه برش گرده صورت اول که این خسرو قالون که لقب پادشاهان ساسانی بوده این در اوستایی بوده هاوس رونگ ها پای درستی که حالا ما برذیم این کلمه این درازی رو با اون صدای قنعه تو دماغی هاوس رونگ ها بزنیم برای اینکه اصیل تر و اصتروجی هم رابل همون جلو. ب هر حال عرض کنم که ا ای نفس داشتیم بر پهلوی بوده در اوستایی هم بوده ولی به فارسی نیام این یک مقدر دوم این که ظاهرن کلمه ازل و عبد از پهلوی گرفته شده من معرب شده البته من قسم و حضرت عباس در این باب نمیتونم بخورم سند متخنی ندارم اما در عربی این مفاهیم اصلا وجود نداشته و اینجوری که حالا عرض میتونم قدمتون می‌بینید که ظاهرا از که درستره عرض که کلمه سر اولا سین با زه خیلی بدل میشه چنان که کلمه حرف اس در انگلیسی و فرانسی و زبانهای دیگه گاهی ز خونده میشه گاهی اس از این دلیل ساده تر ندیم رو و لام هم به هم بدل میشه در زبانهای باستانی اصلا لام نیست در عویسای فارسی باستان لام اصلا لامایی که الان در فارسی هست اینا اگر ریشش در اون زبان های باستانی باشه ره هست شد. سر به معنی آغاز هر چیز هم هست علاقه برشد. خیلی معنی داری، یکشم آغاز هست اثر یعنی بی آغاز سر یا واش شده، از زلسینش که ز بدل شده رهش به لام اثر شده، یعنی بی سر شده عزل و همینطور از ابد، عپت یعنی بیپا کم کم شده عبد استلاح فلسفیست محروم فلسفیست و این رو وقتی که قرار شدی که مطالب و فلسفی رو زفن عربی بگن لغت ها رو گام گرفتن صورت معرب دارو بردن ازل و ابد لا ظاهرا مثل اینکه هر دوشون دیشه فارسی جده که ما در این کار میکردیم در اون روزگاران از دوره انو شیروان به ساله های پرسکی از اونان در جایی دیگه ترجمه شده بود از هند همچنین با با مفهوم مفهوم بی آغازی و بی انجامی چیز داشت، آشنایی داشتیم بنابراین ازال اینه اما اینجا پرتوب حسنه حت به بدون شک به دلیل اینکه حدیث داریم که ان الله جمیل و پل جمال و به طور کلی صفات الهی رو میگن دو دسته صفات از کی صفات جلال صفات جلالی و یکی صفات جمالی صفات جلالی صفات ایست که مستغزم قدرت و قهر و قلبه و امثال اینا از مصدر جلال هم ساده صفات جمالی اینایست که محبت و رحمت و انایت و بخشش و این طویل مصدر حدیثی داری کنت و چند زن مصدیگن فا احببتو ان فخلقت فا خلقتو الخلق لکی اعرفت من گنجی بودم پنهان کنز معرب گنج گنجی بودم پنهان دوست داشتم شناخته شوم مردم را آفریدم تا شناخت این حدیث هم رو از احادیثیست که خیلی خیلی مورد احسانات سوریه و مورد استشحال سوریه است بنابراین خلقت عالم و به خصوص آخرین اونها انسان باشه نخستین فطرت به قول فرزیسی، نخستین فطرت پس این به شما آرد باشه <تصح> بشر اینقدر که فکر کرده مقصود از خلق آسمان ها و زمین مسائل به لفرد خلق اشرف مخلوقات در قرآنم آمده از قال رب و کل الملائکت همینی جائلون تل وقتی که فرمود خداوند فرشتگان که من جانشی از خود روی زمین کافیزه و قبلا باید زمین باشید از زندگی رو زمینم باشه تا جانشین تشید باشه که نمیشه و این مسئله نخستین فطرت از اینه شما توی این شعر فردوسی که هم شنیدید این رو من بهتر اینجا توضیح دادم برای که لازم میشه اینجا توی این مطالعه فردوسی میگه نخستین فطرت فطرت یعنی همون خیلقت فاطر و سماوات ولعرض قرآن بسیار آمده یعنی خالق سماوات آسمان ها و زمین.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 که برای اینکه یه چیزی به وجود بیاد چهارق علت باید با هم جمع شید. یکی رو بهش میگن علت غایی از غایت یعنی آخرش یعنی بنده چون ناراحتم رو زمین بشینم فکر میکنم یه چیزی بسازم که بتونم روی او بشینم و از ناراحتی نشستن روی زمین رها بشم. بعد این بعد میرم علت ماد رو تعییم میکنم که چوبی باشه بعد علت فائلیش رو تعییم میکنم که اوستای نجار باشه بعد علت سوریشو رو فکر میکنم که من اوستا سفاره شدم چه چجور بساز پولش، عرضش، پایهش، پشتش، سایر مسائب بعد از این که این ساخته شد اون وقت این علت قایی که نشستن همون تازه چیز میشه تازه حاصل میشه یعنی اول علت قایی میاد بزن <coughs> ولی آخر همه در عمل این علت حاصل میشه اینو میگن اول فکر آخر العمل من نخستین فترت پسین شمارم دقیقا همینه یعنی خداوند میخواست خلیفهی روی زمین قرار بده برای این کار با آسمان ها و زمین و ساید, ساید یکی یکی نه همه ساخت تا بالاخره آخرش خمرت و تینت آدم به یده یه اربعین من خودم سرشتم گل آدم رو به دو دست خودم مدت چهزی گل آدم و سرشت و ارز کنم به پیمانه زد که اون حالا بحثی دیگری داره همه اینا برای این بوده که گفتم خداوند گفته است که پنتوکن زن مخفی گن من گنج پنهانی بودم و احباب توان اغرفت و خلق توخه و لکه خداوند کی گفته خداوند مقیده به زمان بنابراین این اراده خداوندم از در ازل خداوند چنین چیزی گفته در ازل پرتوب حسنت به تجلید به امزه یعنی حرف شد وسیله اجرای این تجلید عشق پیدا شد و آتش منحاله علت این, این آیهی که هستش در مورد چیست میگه و از غال عرب مکلی الملائک تهینی جایلون فلعرز خلیفه قالو اتج الو من یفصدو فیها و یست کد بما و نهنو به بهمدکه و نغت سلک گفت که وقتی که خداوند فرمود که من میخوام یه خلیفه ی جانشینی از خودم روی زمین بگذارم فرشتگان گفتن که آیا در اونجا کسی رو خواهی گذاشت که در روی زمین فساد بکنه و خون بریزه و نحنون و به همدکه و نقدس و و حال آن که ما استطایش تو تصدیل میگیم و تو رو تقدیس میکنیم، کنیم خداوند گفت چیزی من میدونم که شما نمی حالا حال اینی اعلم و مالات اعلمان و علم آدم الاسماه کله ها بعد همه اسم ها نام ها رو به آدم مامو سمعرز هم علال ملائکه بعد اون موسوم ها موسما ها رو به ملایکه عرضه کرد و قال انبه اونی به اسما ها اولا گفت او خبر بدین به من از اسم این چیزها حالو سبحانه که لا علم لنا الا به معلم به گفتن پا کاتب توی ما دانشی جز اون که تو ما رو تعلیم کردی نداری. یعنی دانش اینجا نداری فقال یا آدم و انبه اون به اسما بعد آدم گفت که حالا آدم اسمای اینا رو به اینا بده. آدم گفت و بعد خدا فرمود که فرشتگان آدمو سجده کنن و باقی داستان که ما کار نداریم. به هر حال اون چه در اختیار آدم بوده در فکر آدم بوده که چند بار تکرار میشه، هم در داستان هاروت و که اونجا فرشتگان میگن که خدای روی زمین مردم فساد می‌کنن، خیلی به دسیسگی دارن، اذیت میکنن کلان خدا میگه که نه، شما نمیدونید اون خشم و که در سرشت انسان سرشگه هست این کار دست آدم میزه گفتن نه ما, ما میتونیم که پریزگار باشیم که حاملن فلا و نه گفتن نه خو خیله خو به صورت آدم بریم زمین ولی اگر خطا کردین مجازات کنچی بگفتن هر چی به صورت آدم بفرد دوتایی آمدن هاروت و ماروت در بابل سهدی میگه چنین جمیل ندامن بوست در کشمی چنین بلیغ ندامن سه در بابل بحافظ اینگه گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی صد خونه ساهری بکنم تا بیارم برحال این هاروت و ماروت که البته اسمشون در استاد من مرهون دکتر تاریخ شده عور واتات و امرتاات یعنی خرداد و مرداد که البته خرداد و مرداد اسم دو تا از مهین فرشتگان یادتون نره اسم برج سال که شده به مناسبت اسم فرشتگان بزرگ به هر حال هاروت و ماروت صا تعریف شده خرداد مرداد بعیدیش آمدند و مردم پاکستان خاک اعتقاد پرهیزکار دانشمندی که علم بسیارا داشتن خب علم دیگه. نشستن یکیشون رفت قاضی شد مدتی به مسند قضا نشسته نه تا یه وقتی یه زن خیلی زیبایی آمد و دل جناب قاضی لرزی هیچی به زنک نگاه خریداری کرد و زنکم که حواسش جمع بود و حالا مرافعش رو گذروند و خلاف حق و بعد قاضی گفت شما به لفره یه لطفی ما بفنین گفت باشو و پاید ایش عرقی سرسی بدونی شد آوردن اینا رو به انواع فسات ها حالو بکرد و زنکم بعض اینکه محص کرد اینا رو گفت اسم اعظم خداوندی رو من بیاموزید اسم اعظم رو هم در او آموختن و زن به صورت ستاره شد در به آسمان و همین ستاره زهره این ستاره اسمش در یکی از تفصیلان بی دوخت یا هر حال بعد اینا سر حساب شدن دن که خاخیه رو بفتن. بعد گفتن که خدا گفت خب حالا عذاب آخرت رو میخواد یا عذاب دنیا رو گفتن نه ما طاقت عذاب آخرت رو نداریم هر کاری کردنی هستی تو همین دنیا بکن خدایا بعد خداوند اینها رو فرمون که در چامی در بابل به یک سرشون آفستون کردن تا قیامت اونجا و اگر کسی بر سر اون چا برسه علم،, علم سه او یاد میگن یه <تصفح> <تصفح> علمان ناس سه همه اینا در قرآن هست درحال، فرشتگان دارای احوال ثابتن من هم رد که اون لایست شدون من هم اون لایر که اون یه هدهی در حال رکوهن همش که یه هدهی در حال شدودن اصلا خلق شدن برای این خواهن نه خشمی نه شهوتی نه خب عکس غزمی هم هم عشق هم چند جا حافظش رو کده فرشتهش نداند که چیز بسته مخوان بخواه جام و گلابی یا شرابی بخواه که آدم میزید گلوهی کر راحت. ملک عشق نداره رفت انوال موضوعی که عشق داشته بشه آدم آدم است. اش عشق داره و خداوندم که حسن داره حسن برای اینکه که جلوه پیدا کنه که عشق احتیاج داره خداوند وقتی که دم زد از تجلیف یعنی هنوز تجلی نکرد آتش عشق در همه عالم دید. بعد تجلی شد جلوه کرده در اون جلوه دید که خب معشوق جس است مطلب فراش بعد از شکست شاید فراش این است که تجلی بکنه و روح نشون بده و عاشق لبخندی بزنه و طرف تو باغ اصلا حوش یا به کلی از زیاره یا اصلا روشو برگردونه به علت حقای زیادین بزرگتنی شکسته اینکه جلوهی که از رو خطید ملک عشق نداشت این آفش شد از این رو بر آدم زد پرجمه فارسی غیرت رشت و رشت همون حسد نیست به ایراد فرق داره اون حالت که آدم نسبت زن و بچهش نسبت کسانش نسبت داره و این بعد اینا رو نمتونه نبش نبیه نبیه نبیه نبشنب نبیه او رو بهش میگن خیلی کرده و همچنین هیچ انتظار بیوفایی و نامهربانی هم از اونها نداره و اگر بکنن میبینه که عواموناس اینها رو با چیزهای خیلی سخت جزا میدن او رو غیرت غیرت هم آفیت از تو و هرکست درد اهبان نمیبرم با حتی نمی خداوند اون وقت میفرماید در حدیثی که من خیلی غیرت دارم سرکشمشو که چون شم از غیرتت یعنی از غیرت تو <تصفيق> را سرکشمشو که چون شم از غیرتت بسوزد یعنی بسوزوند دلبر که در کف او مومد سنگ خوارا اشاره به همین مطلب. کل ای کرد رو دی ملکش ملک نداشت اینا این آخش شد از این قیرت رو بر آدم زن باقیه بحث رو خیلن بنده این بحث به تجلی رو پیدا کنم و بدم سید نوح روت کنه بخونه دوستانم گوششون رو که حتما در ذهنشون نیمونه چون که من که سه چهار در خوندم بازم در ذهنم نمونده ولی به حرام سعی کنم همه مطلب رو لاعقل هم همینجه بگیرن این دستگاهر هم وزیر اینجا لویشون که وقتی میخونن این مطالب اینجا زرد میشه از اول فصل شروع میکنید دکن بخوندن اینا رو هم ببرم اینجا نزید فصل 19 در بیان تجلی ذات به صفات خداوندی قال الله تعالی فلما تجلی رب الجبلن جمله دکن تجل ربه جعله دکاً وخربا ما الجبل جعله جعل جعلهه دکاً بخراً موسا سائقاً. من معنی بکنم یه وقتی که جلوه کرد خداوند بر او، طوح رو پاره پاره کرد و موسا اون رو این دنباله ای اون آیه سنیوز میخوام. دنباله ای اون آیه اینکه به انقال موسی رفت هر میاندور الایک چون بده من تو منظور ببینم. قال اللن فرام دان نفی عوضی کنم هرگز منو نخواهیم ولیکن اون زرعه از جبل ولی به پوه نگاه خلم ما تجل عرب به حول جبلیج عله هون دکن و خرم اون سا سای خواهیم تون تحجمه نمیاره معمولا چی؟ نه که من تحجمه کردم بقی بقال نبی صلی اللہ علیه وسلم این اللہ خلق آدم تا تجلّا پیهی بغال ازا تجلّی اللّاهو تجلّ ازا تجلّی اللّاهو لشیعن خزعالهو این <تصفيق> خداوند بسید حدیث آدم رو خفت کرد و اون تجلّی کرد و اون که خداوند چیزی تجلّی میکنه اون چیز در برابر اون خازه بدوند تجلی عبارت از ظهور ذات و صفات الوهیت است <تجلی> عبارت از ظهور ذات و صفات الوهیت <است> جل و علا شرح آن بیاید انشاءالله تعالی و روح تجلی باشد و در این معنی سالکان را غلط بسیار افتد گاه خوبت که صفات روح یا ذات روح تجلی کند سالک را زوغ تجلی حق نماید و بسی روندگان که در این مقام مغرور شوند و پندارند که تجلی حق یافتند و اگر شیخی کامل صاحب تصرف نباشد از این ورطه خلاص دشوار توان دارش که یک روح هم تجلی می و بعضی از رواندگان به قول روی کشنه که این تجلی صفات همه و در نتیجه برای خود مقام خیلی بالاتری نصفل می به گنگاه. و اینجا می که بسیار رواندگان در این مقام تجلی هم مقام مقام تجلی از همون مقام ها هم. در این مقام میگه بسیاری گمراه شدن و وردو خودن اگر شیخ ساکتر زرف می نباشی کنید اینا بگه این تجدیدات و صفات خداوندی نیست اشتباه نکنید ممکن است که به گمراه اینا پیار نکنید و چند در کشف این حقایق مشایخ متقدم خود صلاح و ارواح هم کمتر کوچیدند و تا توانستند از نظر اغیار پوشیدند اما چون این زعیب آن نظر که بسی مدعیان بی معنی در میان این طایفه بدید آمدند و به قرور شیطان به مکر نفس مغرور گشته به بحر پیچند پوسیده و به هر چند به به پوسیده که از افواق گرفتند پنداشتند به کمال مقصد و مقصود این راه رسیدند و ذوق مشارب مردم یافته و خود را در مملکت جای دو تصرف دانسته و به اباحت و زندقه در افتاده چنان که میگوید اوشیده مرقند از این خام میچند بگرفته ز تامات نارفته ره صدق و صفا گامی چند بدنام کننده نکونا می چند. خواست تا از برای محق این مدعیان از مقامات و احوال سلو شمعی بیان کند تا خود را بر این زنند. زنند اگر از این احوال در خود چیزی نبینند از جوال غرور شیطان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 البیوت من ها و من من ها و اگر به این ضعیف در این معنی گوید تازاق سفت به جیفه برالایی کی چون شاهین در خورشاها نایی چون سعبه اگر غذای بازی گردی بازی گردی که دست شهر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 و از شیخ علی بونانی شنیدم قبط صلاح روح العزیز که از شیخ خیش خاج عبوبکر شانیان غزبینی رحمت الله روایت میکرد نه که که بدوید گور گرفت اما گور آن گرف که بدوید گور آن گرفت که کی بده هر که بده بید گور گرفت بید. هر گردی گردونیست هر گردی نه که به دوید گرفت اما گور آن گرفت که دوید شده یعنی کسی نه دوه حباً گور نمیگیره در این بدبه ممکنه بگیره ممکنه محبود به انایت هست لازمون شرط لازم هست باید کافی نیست با به این ها؟ گور خرد؟ زمون که هر کسی نمیتونه بگیره اما هر کسی تویی هر کسی تویی گورخن نمیتونه ولی به لخره گورخن میتونه گوخه رو بگیره خلصه آنه نمیتونه شش، دست دوست نیست واقعاً؟ که هر نه عزیز من سبب، توفیق این شکار شکار، گرد که دنگ و بدوه دستش که همون کسی که میخواد ش باشد حالا زنی که که در ابتدا چون آینه دل از صفات برکیت و زنگار طبیعت صافی شود، بعضی صفات روحانی بر دل تجلی کند. و آن از غلبات انوار روحانیت به و باشد که نور او و که نور ذکر و نور تاعت بر انوار روح غلبه کند و دریای روحانیت در تموج آید و فوج موجی به ساحل دل تاختن آرد بر صفای آینه دل تجلی عدید آید و گاه بود که با نور ذکر که زا... با نور ذکر ذاکر نور ذکر مذکور آمیخته شود ذوق تجلی مذکور بخشد و نان بود. به گاه بود که روح به جملگی صفات در تجلی آید و این از محب کلی آثار صفات بشری بود. به گاه بود که ذات روح که خلیفه حق است در تجلی آید و به خلافت دعوی حق و به خلافت حق دعوی عنال حق کردن گیرد و گاه بود که جمله موجودات را پیش تخت خلافت رو در سجود یابد در غلط افتد که مگر حضرت حق است بیاس بر این حدیث که اذا تجلی الله لشیء انخذ علا از این جنس غلط ها بسیار افتد و نفس از بحر شور بخیش آن غرور بخورد و هر روانده‌ای فرق و تمییز نتباند کرد میان حق و باطل جز منظوران نظر عنایت که محفوظند از کید نفس به مکر حق اما فرق میان تجلی روحانی و تجلی ربانی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 و ظهور صفات باطل اون که جا الحق و ظهر الباطل ال آیت شباید که در اینکه تجلیه روحانی باشه صفات وشنیان رو محفظه می بعدم موقعسته بعد که با برگرد صفات وشنیان برگرسته شد ولی تجلی رفت و گاهی اف... ممکنه از این تجلی روحانی سوی. و استفاده بکنه و بسیده ای برای شما ارکنت نفس دائمان مشکول شیطنته این از که ممکنه در حالی که تجلی رفتانی وقتی صورت میگیری که صفات بشری محضه پرگی شده میشه اون تدکتر که تدکتر که توق نفس همون صحبت توق توقت هسته جعله او دک کن بلا ما تجل لارب جبله جعله او دک کن بایفاره بایفاره و پار که داغون میگه که به نم به کلی مندک میشه داغون بشه اصلا و صفات بشری بره تا عقل یاد جا و این جا الهب و زهر قلباطل این این میگه فرقه و اون دوام داره تجربی روحانی دوام داره تجربی روحانی دوام دیگر آن با حصول تجلی روحانی تمعنینه دل پدید نیاید و از شوایهب شک و ریبت خلاص نیابد و ذوق معرفت تمام ندهد و تجلی حق به خلاف و ضد این باشد دیگر آن از تجلی روحانی غرور پندار پدید آید و عجب و هستی بیفزاید به درد طلب نقصان پذیرد به خوف نیاز کم شود و از تجلی حق این جمله برخیزد و هستی به نیستی مبدل شود به درد طلب بیفضاید به تشنگی زیادت شود چنان که عزیزی میگوید سوز دل خسته از وسالش ننشد بین این تشنگی از آب زلالش ننشد نیرنگ وجود و نقش هستی برخواست و سر خوص عشق جمالش ننشد و اما تجلی حضرت خداوندی بر دونو است تجلی, تجلی زاد تجلی سفاق تجلی سفاق ارسان فت دنبال این انواع تجلی ها رو میگه باز تجلی زاد تجلی سفاق تو باز انواعش رو میگه تا آخر پس؟ و خواهی دوستان بکنند که خیلی هم شرائرانه و زیبا نوشته این البته کمی سواد فارسی احتیاج داره تو عضو میخواد خیلی <تصفح> ولی خیلی خیلی قشنگ و زیبا نوشته این رو و تجلی صفات جلال تجلی صفات جلال تجلی صفات جمال سایر مطالب و بعد توجیح میکنه اونجا حرف چیز رو حرف حلاج رو که گفت لعی فکی جببتیسه والله که میگه این در مورد فنای مطلق خودش مست جزحق چیزی رو نمیدید گفت چیزی نیست و اون که اگر صفت صفات به صلاح چیز به صفت واحدی تجلی بکنه چه؟ و بعد یا اگر به صفت قائم به نفسی صفات خداوند صفت قائم به نفسی متجلی شد آن اقضا کند که ابو یزید میگفت ما اعظم که این از بایدید و اصامی کردن دیگه اینکه میگه که این وقتیست که صفت قائم به حق تجلی کنه در وجودش مسائل مسائل انواع و اصام اینا رو میگه و فصل ادامه داره همینطور که من فعلا اینجا دیگه نمیتونم چیز بکنم فصل هنشی صفحه داره و شایسته این هست چم بارادم بخونه خود من دو سه بار خوندمش و بازم بیشتر باید خون حال این, این چیز این تجلی که اینجا در شهر حافظ آمده مسئله است که سوالها روش کار شد و عرض داده شده و مذب داره و اون چیز داره این به همین سادگی نیست و با و نه اینا میگن که ما ما اهل ولول نیستیم ولول و اینا رو اتحاد حلول و اینا رو خیلی تردیم کنم یعنی که بنده همیشه بنده است فقط این ناسه قطره که به دریا به پیبنده یعنی نیست بشه هیچی از نه نمونه بنابراین نه اونا کاری نداره البته این مطالب مطالب ریاضیی که نیستش که. در بالاخره در یا حالاتی رو حس کرده ریاضتی کشته ویدی چیزای دیده یعنی که دیدهی که اکثر هم میگن خود کم میگه نگفتن اینا رو برای اینکه اکثر میگن که تصبف علم حال، علم قالیم یعنی نمیشه برای چیزایی از ذهنشون سادر میشه که اینا رو میگن محبال رو ندیدم و مقامات روط نکردم، حق ندارم در اینجا هاره عقیده بکنم که درسته یا نه. ولی یه مقداری از روشنبینی بینی و اشراف بر زمانماه رو این قبیل مسائل ما می‌بینیم در اشخاص. و بنابراین نمیتونیم به کلی نافی بکنیم در حقیقت بهتر است که وقتی یه عالمی رو. یه می رو آدم تینا کرده بگی که آقا من اطلاعی از این مسائل ندارم که تو عالمیش که آدم تینا کرده این نیست این معنی ندارد دلیل جهل آدم بسیار چیزها هست که آدم نمیتونه یعنی همه چیزها آدم نمیتونه جز مختصر چیز محدود خیلی خیلی اندکی که در این عمر کوتاه اگر کوتاهی نکنه میشه یک چارکنی آن خیلی بله باقی مطالب با همه یک دریا که آدم هستن نمیدونه مرموم استاد ما بفرمود که آقا چه خبر است؟ در یک هندوستان چهارسد زبون مردم حرف حالا من اومدم فارسی رو دید همه کتاباشم که نخوندم قرش عشیرش هم نخوندم این این همه دعبا و ارز کنم که مثل تابوز چطر زدن و به خود بالیدن و استاد استاد نداره که آقا کسی نشده آدمی چیزی نشده است. چیزی نمیتونه بشه اصلا آدم چیچی هست نمود بیبوده هستند چهریان میگه بگیتی بغیر از نمودی نبودیم برفتیم که از ما نماند نمود با باست آدمی زاد اینه و بنابراین بعدی باید یه قضیه حساب کارش داشت. خب دیگه شبتون خوش. رب ارنی که یک بیت دیگه سحر آمدم به گوی است که ببینم نهانی ارنی نگفته گفت 2000 لنترانی هلا انتونیو همین معطلق و اینا از دو کار رفته و داری همون که اصطلاح قرآنیه بعد میگن لنترانی به بود گفت کلاس ان شاء هست بنده میرم به لس آنجلس کوشش میکنم قبل از کلاس برسم اگر ایام نشود خبر میدیم دیگه ولی فکر میکنم باش